بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و اهل و اجمعین اما بعد دور و مروری میکنیم رو درس گذشته بحث فطرت و معانی فطرت و اتجاهات فکری که در بحث فطرت هست ما سه تا از قرآن رو داشتیم هفته گذشته در بحث های بعضی از علماء در اینکه فطرت به معنای یک چیز خالی هست در نفس انسان که یک گرایش خالی یعنی یک چیزی که انسان، یک بی در نفس انسان نمیلی به گفت دارد نمیلی به شک دارد خود فطرت اساسش به معنی زغویش همون خلقت هست و مقصد در احادیس آر یادم همون خلقه خلقه که در انسان هست اون مجرد خلق اولین عدلشون این بود که گفتن که در آیه قرآنی اومده والله فأخم بذك للدين حنيفة فترة الله التي فترة النساء علم <تصفيق> الله تذيبه لفلق الله وآخر آية ما داري بحث بعض دلاشة دلاشة دلاشة. ما ان انها در عبلي هستدارش تحقيق داشته ما اين آيه اين آية كدر بحث سريح فترة آیه از اینجا شروع بیشه فقط مجفل الدین حنیفه فقرت الله التي فقط بناسه علیه اینا میگه این فطرتی که در این آیه اومده به عنوان یک رکیزه فکری که میلو گرایشی به اسلام دارد این در نفذ یک چیز نفذانی هست در نفذ انسان که انسان با گرایش به حق اونها این مسئله رو قبول لگرم میگن نه انسان بی است هیچ گرایش درش نیست نه به یه چیز خالی هست در نفس احسانی، خلقی خالی ما مقصد از خلقت در این آیات و دیگر آیات همش به معنی مجرد خلقه خب چرا مجرد خلقه؟ گفتن که اولا در قرآن خطرت خلق و اهل فطور و فاطق به معنی خلق اومده مثلا ما داریم در آیه اول الحمدلالله فاطق در موات این خالق خالق و موات خب ما را دارش بر این و گفتیم که اولا ما اینکار نداریم که فقرت معنای لغمیش میازه در لغت بله ما قبول داریم لیکه در جایی که مفهوم شرعی داشته باشه باید طبق شرق تخلیم بشه باید طبق شرق تخلیم بشه اینجا درسته که به معنای لغمیش بوده. بده ولی در تون چون اصل استنادش به دین نیست به انتقال نیست، به مرام نیست, نیست اصلش آسمان هاست به عنوان بخسر همین معنی لغبیش اومده مثل کلمه ایمان که قبلاً بحثش کردیم. اما در اینجا نه در اینجا بحث دین و تدعیون هست فرقم وجهشه لدین این چیز مسئله غیبی هست فطرت بل یک غیبی دوم من ما گفتیم اگر قرار بود که فطرت در این چنین آیاتی و احادیث احادیث و آیاتی که در این باب اومده اگر قرار باشه یک خلقت خالی باشه خالی و انسان خالی از ذن که هیچ گرایش شد هیچ اعتقاد مرا می ندارد اگر قرار باشه این باشه پس در این آیه نباید خداون خطرت را از باب منش می اومد. در اینجا می خداوند با یک درود و با یک سنه و متی بحث ابراهیم میکنه تا میاد خطاب به ورثات از فاطمه وجهه الذین العلیبه فطره الله لذی فطر الناس علیها لا تغیر خلقها مستقیم دین باش اون دین که فطرت یک فطرت که تبدیل عبادت نمیشه تو اخلاقی که بحث شد یه دو چینه مذهب اگر قرار اگر خراب بود خالی باشه یعنی فترت یک چیزی خلق عادی باشه پس نباید خداوند این جینی مدت فترت الله خداوندی نمیگفت اینجا داریم یه فترت الله لی فتاتی است که خداوند الّذي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا دَلَالَتِي جَلَّتَ یعنی بحث دی ده که اینجا یک کاره باشه یا خالی بتواند همزه خود ما خلقت خالی باشه نه اینجا از طبیل ملشوم نه از طبیل الزن و خداوند راند یک چیز را برسونه با اونا اینکه این فطرت یک چیز طبیعی و عادی نیست یک چیز طبیعی نیست این دینی هست اواقه موجه که لدین حنیفه فطرته فطرته الله الگه خسر الناس علیه این بحث دیون، این اولین دلیل و رده برونها دوه مندل نزون گفتم که و الله اخر لکم من نظور امهاتکو لا تحرون شیعا کفتن که طفلی یعنی که به دنیا چیزی نمیدونه ما دوتا رکسیزه داشتیم دو دوتا اساس اختلاف ما با کسانی که گفتن انسان هیچی نمیدونه و هیچ گراهیش نداره ما دوتا اختلاف با اساسی داریم اولا اختلاف ما در این که علم دنیا علمه یکی علم هایی هست فطری و یکی علم هایی هست اتصابی درسته؟ ما گفتیم بچه ای که تفره که دنیا میاد سینه مادر را میمکیم درسته؟ میمکد و شیر را مینوشد کی بهش یاد داد؟ علم. نوشیدن علم تجربه هست تفرشونی تجربه کرد اولا پس باید بین علم فطری و علم اقتصابی باید فرق کنیم این اولین اساس یعنی اینجا وقتی که نفر شده لسه علمون ایشئی آوالله خده همون بزنون مهاتی این علمی که نفر یک علم خاص نه چون خود این آیه میده چون که به دنیا میاد غیر ممکنه که هیچ علمی نداشته یک علم رو خدا بهش داده و اونم بلقد تأیید جامعه دیم با یک آیه دیگه که گفتیم این چیل علم اکتسابی شرعی. گفتیم دلیل امینه که در قرآن اعرامی خطاب به اولو کان آباء لا نه یعلمون آیا اولو کان آباء به درسی که فدراوندشون چی، هیچی نمی دونستن. آیا اونها نجیمی که نمی دونستن؟ مگه تجارت نمی دونستن؟ اولو کان آباء هم مگه این فری نیست که فدراوندشون چیزی نمی دونستن؟ پس نفس نفسی نبودن علمی هست. علم شرع شکی داریش نیست. بچه ای که بدونیم یاد. بچه که به دنیا میاد علم شرعی ندارن نماز رو نمیدونه شیه نمیدونه روزه رو نمیدونه شیه شکی درش لیکه ملو گرایش به سوی اسلام آیا این هم در قبل نیست؟ خیلی این هست و آیا دخاری سعیدش میکنه و این هم دلیل بر شما نیست چون نفی این شیخ خصوصی یک علمی هست به دلیل خود این آیه و عدله دیگری که در دیگر دیگر دیگر باب اومده من رکیزه دارم میگم، خلاصی درست گذاشته دارم میگم که ترکیزتون روی اساس اختلاق ما باشه. اون نقطه اساسی فهمیدید، یه دو دکه بازه میرین به ثبت میادل این نما توجوزه و نما کنتون تعملون درسته؟ این نما توجوزه گفتن که ما جزامون بر اساس عملمون هست جزامون بر اساس عملمون هست پس کسی که عملی نداره پس کسی که عملی نداره نباید توبیز بشه کسی که عملی نداره نباید تو بشه خصوصا الان بحث اجماعاتی که نرک کردن در اصاس و مسئله دیگه که ما در استعدالشون بینیم آید یا طبق فهم اونها که کسی که به وقت عمل نرسه مثل یک طبق این شخص نهبا مجازات بشه و نهبا حساب و کتاب بشه و اصلم همش کرده ما ماکنم و عدمین ح نظر رسولان ما گفتیم بازم اینجا اساس اشتباهشون در چیه هست. اساس اشتباهشون بازم در عدم به بین علم کتابی و علم فطری این اساس مشکلش. اینا گفتند که ما مجازات میشیم بر اساس عمل نه اساس گرفت. ما خود رو گفت گفته ما فوترتون تف... ما چیزی که عمل می مجازات بشه بر اساس اگر خطرت هست پس انتا در مطابل عدم این میلو گرایش وقتی بین گرایش رو زیرفا بذاره پس درسته؟ خب ما چی گفتیم؟ ما چی ما بگیم باید اولا خط بذاریم بین علم التطابی و علم زنی اون بچه این مکلم نیست. پدر و مادر بقراش می کنند. که در حدیق بعدی میدن الله دو از از دارشون رو دوابی مو خواهد پدر یه همیش می کنه برادر در انحراف می کنند. درسته؟ به خاطر همینی که خداوت وقتی که انسان مخلق شد بعد از اون انسان مجازات میکنه. بعد از اون به چه موقع مجازات میکنه؟ وقتی که پیان برا رو خود از یعنی تا که دلالت دلالت یا مدایت از طرف خدا من باشه که اشخاص را نجات و تیانبران نه فرسته و ما کنن معظمین حتی نبعده بچه در اینجا چون بحث کسبی هست انسان بر اساس تکلیف اون چیزی چی دیگه کسبی کنه رو زکی بهش فاضارش میبیند بخاطر همین گفتیم که به خاطر همین گفتیم که اینجا اینجا در این بحث و مجازات مقصد عمل اقتصابی هست که بر اساس اون انسان یا میشه یا پاداش شد بینه حالا بحث که هست این هست حالا بحث خود اتبار خصوصاً حالا در حدیث بعدی اشاره شاهده که تر و صریح ما بتونیم جواب بریم به بخش بحث خودتون میبینید خیلی گره و داره که ما این گره و پیچ ها رو باز بگوییم حدیث ما من مولود الا یولد علا تفره هیچ معنی ندیش مگر دروی فطرت الهی فابا فعباوه ابتدار مودن یو هاو ودن یو نا صوالن یو مجلسان كما تجل البهنه بهمه الجماعه حتى ستتحس ان فيها من جداء وكما قال صلى الله عليه وسلم درس فچی گفتن گفتن هیچ کتی نیست مگر اینکه دروی فطرت الهی میشه قداری رویش میکنه نا صوالنش میکنه مجلسش میکنه همانطور که حیوان سالمی حیوان سالمی را به دنیا میاره درسته؟ حیوان های سالم حیوان سالمی دنیا میارن. میارن آیا میبینید که گوش بریده درش باشه؟ گوش بریده یا چشم, چشم،, چشم، مثلا چشمش از قاسب بیرون اوورده باشه؟ هست؟ نیست حیوان سالم تو تا حیوان سالم اگر اختلاف جنیتیکی درش نباشه اگر نبیدنم ماده چیمه مادر مصرف نگرده باشه یا مثلا نشه. و صادق که به دنیا میاد سالمه در اگر واکنش شیمیایی داده شده سالمه نگویشش بریده بحث برشه جداه بریده نشده یعنی کسی نیمه در درچه مادر در کنه مادر بکنه گویش رو ببره که شخصا بیرون برمی‌گرده درسته اون اختلال و خلل هست در خط جسم. خب اینا چی گفتن گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کماثن جلبهیمه بهیمه جمع همو که یک حیوان سالم حیوان سالمی را به دنیا بیاره حیوان سالم مریض نیست گفتم که قلب بچه ها در حین ولادتشون هم بازم همیتون سالمه نه کفترش هست نه ایمان نا بحث عدم به کفترها نیست اضافه که عدم بسته که کفر نمیدوند ایمان را هم نمیدوند یعنی چیزی در نفسش شناخت الله معرفت فطری الله نیست اساس فطرت دارید شناخت الله در نفسشو یا گرایشه به الله در اساس نهادینه یه نفسی شد انکار میکنن میگه میکن. چون حیوانات ساده من، پس این دلیلی هست بر این که بر این که اون انسانی که به دنیا میاد هیچ گرایشی نداره و گفتن اگر قرار باشه که بچه ها وقتی که به دنیا میان گرایش به سوی ایمان داشته باشن پس باید اول مسلمان بشن بعد از اسلامشون دوباره کافر بشن بعد به اسلام برگردن. اول بعد اسلام ایجاد بشه شهادتی را بگن ما میبینیم که نه مشتقی هیچ کدوم شهادتی رو نمیگن جواب و من بر این شبه حاتشون فهمیدید شبه حاتشون سالمه میگن لازمه سالمی این که نه کفر نه ایمان داشته باشه نه کفر نه ایمان داشته باشه سالمه و گفتن که اگر قرار بود بچه ها چیزی میتهمیدن پس باید اون بچه مسلمان میشود با کافر میشود پس لذا اون بچه هیچی نمیدونه و هیچی نداره جواب محبلا بچه ای که به دنیا میاد بچه که به دنیا میاد شک درش نیست کافر نیست درسته؟ مشرف نیست بودپرست نیست درسته؟ این ما شک که داری اون بچه این اوزادی که به دنیا میاد شرکیات رو نداره به خاطر همینه که قدرت انجام شرک هم نداره و قدرت تشخیص هم باز نداره اون بچه ای که به دنیا میاد قدرت نداره درسته؟ انسان یک چیزی میده دستش بهش نمیرسی آیا دست به انسان نرسیدن به یک چیز دلیل بر اینه که اون چیز وجود نداره خیر دست ما به میره؟ میرسه میرسه نمیرس حادث نیستی به خرشید آیا این دلیلی که خرشید نیست دلیل نیست. این افراد ما چون قدرتش نداریم نمیتونیم اون بچه نمیتونه مسلمان بشه چون نمیتونه پس نیست خیر قبول نداریم چون نمیتونه پس نیست ما قبول نداریم دومه ادب بحث از فطرت قدرت برشناخت با اراده شخصی اگر فطرت قدرتیست بر شناخت الله با ارادهی که شخص داره فطرت خودشون میگه این قدرتی از انسان حالا این قدرت چه قدرتی هست میل به حق یا نحق میگن در انسان قدرت هست فطرت قدرتی خب ببرخید این قدرت از خودش اراده ای دارد ندارد گرایش دارد ندارد حالا آره اینجا خودشون درش میمونن اگر گفتن که قدرتی بر تشخیص حق هست پس به حق حرف ما به حرف ما رسیدن آخر اگر قدرتی هست بر تشخیص حق پس اونو حق شماسن باینگر شده و ثوما بحث مولود بحث که سالم به دنیا میاد وقتی که ما میگیم که سالم به دنیا میاد مشرک نیست رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجوری مثال میدن برای یک شخص الا اینکه امام مولود الا یولد علی الفطره فبواهو يهودانه یناصرانه او یمجسانه درسته رسلات اللہ علی وآلہم نگفتن او یو سلمانه او یو مسلمانه نگفت که مسلمان شرمی انسانی که بدنیا میاد روی فترته یعنی اسلام درسته؟ انسانی که بدنیا میاد روی اسلام فترته نی اسلام پدرانا کی؟ چی؟ یهودیش بیکنن اونا بگن که اسلام نیست خالیه پدرانا کی یهودیش میکنن؟ نصران میکنه یا يا مجوسيش ميكنوا که حیوان سالمه میبینی به دنیا میاد سالمه گوش نیست همونطور انسانی که به دنیا میاد بیشش میگره این دلیل بر علیه شماست نه بر علیه شما بدان که اونها اصلا عمدتا استدلال کرده انسان سالمه یعنی خالی است خیر سالمه یعنی کامله انسانی که به دنیا میاد یک بوبره حقیقیه الله شناسه یعنی همون که یک حیوانی به دنیا بياد سالمه انسانی که به دنیا میاد اعتقادش هم سالمه نمیتونه شرک به پدیر بود باشه میتونه مثلا بود را اگر پدران و مادران نگه که ندارو نیاد بگیر پای شاه فدانی و پای زیارت ساله اگر پدران به ما نگه مادران نگه تدیگ نباشه فدان آیا بچه که به دنیا میاد؟ میره به ترحب این چیزها؟ بله انسان میتونه خداشنات باشه می خدا هست لیک این شرط انحراب میکنن نگفت اسلام اسلام رو نیبوند دو دومه تشبیه کرد انسان سالمه یک انسان کامل و صالح لیکه چی؟ گوش بریده نقص درش شده آیا اسلام ببخشید نقصه؟ یا کماله؟ اسلام کماله و این حدیث دلاته بر نقصه پس نقص برنگردد به این سجی و اسلام کاملش نیست واضحه؟ این حدیث پس مفهوم رو فهمه شد که این سالم این چینی هست فهمشون اصلا کاملا نشطه بست چار من همونطور که در بحث سابق گفتیم همونطور که بحث سابق گفتیم اگر قرار بود که این فطرت یه چیز خالی بود خدا هیچ وقت در باب مک نمیارد خدا من مک میکنه فطرت در باب مک میارد اینجا هم در باب مک شد در باب مک مولودی که به دنیا میاد سالمه مدشه یا زمه مدشه مدشه مولود سالمه لیکن اونها هستن که خرابش میکنن پس انسان یک چیز ممجوش هست یک چیز گرایش مصبتی در خودشتر نه گرایش منفی ما هستیم که منفیش میکنیم و دوش بریده و چش بریدهش میکنیم پنجوهن این که اینهایی که اومدن متبنی این شدن که فطرت چیز خلق خالی در نفس انسان هست اونهایی که این حرفی زدن حرفشون حرف قدریه هست حرفشون حرف قدریه هست قدریه میگه چی گفتن؟ گفتن خدا من نمیداند که ما چی میکنیم از حال ما با خبر نیست فردا چکار کار میکنیم امروز چی کار میکنیم می خدا من اگر میدونست پس ما رو مجبور ساخته. پس خدا چون نباید ما را مجبور بسازه پس, ما انسان، پس خدا من نمیدونه که ما انسان ها چیکار داریم میگوید و قدریه در،, در اساس این حرفشون گفتن که شلاخت اسلام هست ندری هست غیر ممکنه که یک شخص بدون, بدون نظر و استقلال مسلمان بشه یکی از قواعد اشاعره و قدریه هست از هرچه که اشاعره در ذات خودشون جبری هست. Allah معتزله بیشتریشین اینجا دارن معتزله بیش قدری هستن. اصلا اگر هست. آدمشون قدری هست. میگن انسان به بچه بچین چاره خیلی هد مقرر شده. در نظر معتزله باید این شخص اول نگرش بکنه خدا چی بجا حادث و حادثه و محصول سفران و فلان, فلان بعدهش قبل نومد. در بحث نظر رسولان. بعد این چیلی میشه تا اینکه بر اساس بچی به مؤمن به ایمان. انسان در نظر خودش مؤمن نیست. این حرف اگر ما بگیم که انسان خالی هست هم حرف, حرف قدری هست انسان هیچ ایمانی هر خدا رو نمی‌شناسه باید بیاد یک سری پله‌های سلطنتی را طی بکنه چون خالی هست باید طی بکنه تا اینکه برسه به خود خداوند یعنی نمیتونه خودش هم در نفس خودش اکتشاف این داشته باشه که خدایی هست شیشمات اینکه گفتن اساس انسان صالحه و اساس اسلام بر حسب اکثریت نقدر نحسب أصل وأساس ما أسبابه شو مخالف؟ ما من مولود وفترة الله عموميا خصوصيا عموميا مطلق احسب عموما قلت إن أغلب يعني أكثر ممنان بلفترته أو ين أو يشمل إنسان مثلا فترة الله فترة. فترة الناس علينا الناس الناس أو ين الناس أشخاص هسا عند مردوم كتاب خلاص نطلع يوين ك الناس يعني أجمعين. و ما من مولود من اینا میگن اغلبیت ما مومنیم نه همه همه همه, همه همه همه همه همه اشخاص حتا من گفتن در گفتشون اگر قراره الهی کش شبهه شبه اخریشون این بود اگر قراره که بچهی که به دنیا میاد ایمان شناس باشه خدا شناس باشه باید کافر اول مؤمن بشه باید مومن باشه تا این کافر بشه باید بلد ایمانش کافر بشه و ما میبینید که بچه های کفار همشون کافر همه هیچ کدومشون مؤمن ندودن جواب این حرف درسته این حرفشون درسته عدد پدر مادت نمیومدن برش بگن که علی خداست، مسیح خداست، فدانی خداست گششون نبیبرن، چشمشون نبیبرن درسته؟ چرا؟ حجیب اینه در لغت عربی جدا مقطع و اطراف خاصا قطع چشم بش. و گوش بشه میگن چرا رسول الله عليه اللہ وسلم گفت که چشم و گوش پدر و مادر چشم و گوش کور میکنن تعصبی بار میرن چشم و گوش لا قلوب و لا یقین و نبیان دیگه قلب بسته میشه که راه ورودی بسته شده راه در صح مدل بسته شده راه برو چی هست گوش بچشو چشمت ببندی الا و لهم اذان و لا یسمعون بها قشر النبيشان نمیخوام بشنند نه اینکه اصلا نمیشنو نه لا یسمعون بها ای لا به بها بها الحقه حق دون نمیشنند تقدیم موضوع گوش دارن میشنو خیلی چیزا میشنو ولی حق را حاضر نیستن می با اینکه حق حق میدونن حق نمیخوام به وجهه خیلی مسائل داره میتسه این خیلی تذکر جالب است بس اگر اگر آن بچه ترد می شود رها می غیر ممکن بود که کفر را می پذیرفت شکر را می پذیرفت اگر نه هیچی بنده ای نبود که مثلا بلفال ما اختلاف دینرس ها داریم یکی مدیش را می پرسته یکی گاو را می پرسته یکی بودها را درست؟ درست؟ چرا ما باپره چو نیستیم؟ چون نیمده کسی دوشی ما ششمون ببوره چون نیمده پس هر بجن وقتی درست بود که پدر و مادر در خلق انسان دخالت نداشت پس پدر و مادران که انحراف ایجاد سرند تا ابوا روی ها ودان بینبان ها و پدران هستند که عوض میکنن پس این کگو ک و کور کردن فرزندان توسط مادرانه کار کور کول میکنه بادر همین هم همطور بید نگو که مسلمان می چون مسلمان کمال بینایی و شیدنه. کمال منطق. و آخرین آخرین ردمون این که گفته شون فطرت مجرد یک طبعی هست طبعی در انسان خالی خیلی گفته فاصلی هست لازمش اینه که انسان با حیوان فرقی نکنه انسان مثل حیوان میشه تشخیص داده دیگه نمیدون حق و تشخیص بده اگر قراره که انسان حق را نتونه تشخیص بده پس چرا پیانبران فرسته صد و بیسه چون هزار هر روز قیامت ما میام میگه نه و قرآن رو نفهمیدیم، سنت رو نفهمیدیم عوض داریم درست راحت می راحت میسیم جلال خدا، حق ما نفهمیدیم همون حدیث قبلی داشته راحت، ولی که خدا خاصه با اقامت حجت و فهم و در و میل قلبی که در نفس انسان گذاشته، اقامت حجت بکنه که بله حق اینه و اینو حق حق شناسی و در نفس انسان گذاشته. باقا هم که به حیثعلم معاحف نصف و کره در لعی هن است گناه که در نفس خودت احساس بکنید. پس این چیزی هست که در نفس انسان هست و پدران مادران هست هستند یه چیز را عوض میکن و خداوند برای تش این ایمان تجدیل این ایمان پیامبران را میفرستد تا اینکه به مردم بگویند پدرانتون مدلانهتون اشتباه کردند. این خل های بحثتر روز بود امروز, امروز که مشکل گیریداری دینگترش وده خطه ثانی که بعد چند ثانیه سلام ثانی که گفتم که